اللَّهُمَّ بحث با حَرَامَ ذَهْمَةَ اللَّهُمَّ اَشْهَدْ مُشْرِكِينَ حَمْلَةَ بَشْرِيَّاتِ حَمْلَةَ عَذَابُكِ بَحْثَ بُجِيَةَ خَبَرَ وَحَكِيمَ مَظَلَّةَ تُوَكِّشِيْتَ البسیس مثلاً متأثراً متأثراً نکردم با خاطر اینکه فارغ اداشتم سبز این سبز تو چه مطلب رو بسی ایکی شد یک نحر دیگرم جای دیگرم گفته بودن استاد دو دوتا مطلب رو مفهوم ما معنوان دوتا اشکال برگوییت تعبدی خبر من در زیل آیه نبع مثل این شکر انصاری قدس الله نفسه باکن بین این عنوان که این اشکالات اختصاص با آیه نبع نداره در زیل آیه نبع بردن. در دلیل حجیت اما فهمدن اختصاصی نداره روی مطلق عدده ده. به حسب این چاپی که از مصباح و رسول هست آن مراجعه بفرمایم به اصطلاح این جلده دو به شماره 47 عمومه آساریشن صفحه دیویست و یک در دلیل آیه ایشون میخوند دو تا شده که اختصاصی بایه نبه نداره بلکن خوبشون در همین زید آقای نبر بودن باید بعد از عدل خجیت میبودن اشکال اول رو که اگر خبر واحد خجیت باشه لذب ما عدم خجیته که خجیت نباشه، چون از جمله خبرها نقل سید المرتضی الاجماع على, على عدم خجیت خبر شون نقل اجماع کرد و یکونه حجت محل فرض اوی مبنای شیعه که نقل اجماع هم به منطقه خبره دلاله که خبر یک دلیل تقصیلی و اجماع هم خبر اجماعیش خبر تقصیلیه مثلا قال اصداد و علیه اجماعی این اجماعیست فقط خبرش به اجماع تقصیلیه ولد من حجیقی یه عدم خبر این اشتالیست که ایشون فهمده مثلا ای که اول حجومی رو بیان بکنن یکی این که خبر سریت حسیست و تقدم در بخص اجماع منخولا ملازم است با حجیت خبر حسی و خبر حسی دوبام این که نقل ایشون معارض به نقل شیخ است که فرمان اجماع بر حجیت خبر فیض خطان این هم یک اجماعان اونم یک اجماع, اون می اجماع صادت میشه پس نمیشن در مقابل افایی نقل مثل بیست دلیل سوم، یستهیل و شمول عدلت و حجیل خبر سید ریال زمین وجود علامه این لازم میاد که این باشه بعد یه شهری دیدن که آن مراجعه کن نقطه چهارون علی اغماز انجمی ماتقدم دلیل و حجیل و شامل دلده خبر سید چونیشون میگه درامن هم میشه که دلیل و حجیل شامل خبر سید بشه پس هزاران خبری که داریم خارج بشه یا شامل اون اخبار بشه خبر سیل خالش بشه خب بهتر در آن هم بینه تخصیص و قلد تخصیص. این هم ایشان دقیقه مطلب چهارم آوردم که من عرض کردم اجمالت میخوام. بعد از باز یک توضیحی دعویی طبیبا شبیه تکار مطلب برد جوابی البته خود این اشتباه خیلی روشن نیزه نیفی نحسه حالا خب اگر نکات فنی خیلی... خب ایشان یه جوابی دادن غیر از جوابی ایشان نکات فنی به بشین یه مقدار طول میشه بعد ایشان سمه نهو قدس پشت شده برسول متعرض از کنن ایشان و رو میارن می اما خیلی هیچیز نمید اما مرموم نایمی رو شکری مرادیشون در اینجا برده لحاظه محوم آزیاست آزیا دو اشکال کرده برای این استدلال در این اشکالی کرده دو تا جواب داده بعد خود محوم استاد جواب ایشان رو با دادن که نه این جوابی که شما دادید درست نیست حالا من از میکنم که این یه اصلشویه چیزه که دیگه متعرض رو کرده ماست از و جواب ایشان و بعدش هم دنبال نکته دوم جواب آب صفحه سفه 25 بعدم ایشون بازیاب دن که این که آبی که الله نفسه در درست نیست و و تا سفه 28 ایشون مطلب رو توضیح دادن که آبی اگه خواستن بلی مراجعه مراجعه کنم از کنم که اصل این بحث اصولاً ما ارز کردیم سابرانشون شبیه همون رو بحث اجماع بذاشت. اصل این بحث فی نفسه اصولاً تمام نیست تعمل بفرمه اولاً این مقنیست برای این که ما حجیت اجماع رو تعبوزن و قبول بکنیم به عنوان خاشف از خول دنسون خود این مقلب ثابت نشد خود این بحث و برسر هم بخواد ثابت بشه یک شرازی بسیار سختی داره یه مثالش رو من در فقه شیعه در این کتاب کافی یک مطلبی رو از کتاب موسن بخت واسطی نقل کنه یه دفعه یک کتاب موسن بخت واسطی و یکی لخت بدا که مثلا اگر این سال مثلا ببینیره چی پسرداشو چیداشو حکمش در باقیه بسیم حالا من مسالش بزهرم خب اگر موسفن دخل واسطی در زمان امام موسفن جفن سوال تو با سوال موانه مطلب رو نحر بکنه که اتفاقی اصحابه شما بدن دیمیشه خب امام کشفه برز کردیم در مساق رحل سنت هم داریم مالک ابن هنس که فقیه مدینه در مبتع حدود 300 مورد میگه وجه تو اهل این به برد یه حاضر ها حاضر یه حاضر این احتمال داره که اهل این در مدینه شامل امام هم بشه در عبارت ماله چون مقدر نهبو میکنه سوال مدینه پس بناولی برفرض ما بخوایم قبول بکنیم ما باید شرائط خیلی سختی بشه اون کاشفیت از قول امام مع دروب. و همه اجماعات سید منتظر یا اجماعات شیخ توصی اینها قطعا هیچ کدامشون کاشف از قول امام نیستن نه کلمات شیخ توسی قدس الله نفسه نه امام مثلا نکته اینا داره در قمد قنجم کاشف از قول امام باشه همون ترهیهی که از کلمات ترهیم رسیم درستن به اسم حت انسان حت زن. این حت سن تو بیه ازشم هم, هم دو دیگاره این طور نیستی بشه و این یک دو و توضیح هم بازه ارز کرده این مرمون شخص دولار توستری در اون کشف و بنا یه مقداری بحث میکنه راجب این که مثلا کاشفیت قیل از کاشفیت ویستا ارزش اجمان نقل اجمان از خبر به تقدیری شد یعنی وقتی سید محتضا یه اجمان اصحاب ما اینه این نقل کلام فرصم مثلا بیستا تغییر هیستی در برداده این ارزش به و نقل شده شیعه فوسیان که میگه اینا نقل قول سی نفر دیگه در بعضی میگه دیگه حدی داره اینه قول 20 نفر سی نفر چه نفر که در بغداد هستن این ارزش علمی داره دیگه. کاری به تعارض نمیدیم اصلا تعارض تساووت این, این خودی چه ارزشی می داره که 20 نفر در بغداد قابل باشه و توضیح دیگری که عرض کردین اصولا محسن. اینجا تعبد نده و تفکرشون یعنی مرموم اصدار آقوی دیگران کردن و جابدن. تفکرشون نبینه تعبد به کلام سید یا تعبد به کلام شیخ. از خدمی دو بزرگوار دو تا آقوی بزرگوار هم هم هم هستن مرموم شیخ احتراما شایشون شکل حقا در جای ظاهرا تا سید مرتضی میگن درسشون میرسه اینا دیگه شاد 45 تا صدشون شیعه هستند علاوه بر اینکه بعد روز ولادت سید مرتضی برنده روز ولادت بحثشون نیست این مطلبی رو که اینا نقل کردن اینجور نیست که ما داشته باشیم ببین مثلا تعبدن خبر شیخ قبول کنیم اجماع دروازه شما شیعه تعبدن دروازه شما شیعه سید سیری فقهای ما برایی که فقهای ما, ما داشتن مخصوصا در قیبت سغرا قبل از قیبت سغرا بعد از قیبت در قیبت کبرا که این دوزارو بارودن اینا همش واضحه چیزی جایی ابهام نداره یعنی پرسیم اصلا مسرک فیلی محسسا در فرق چه کار میکنه واضحه شیخ توسی در فرق چه کار میکنه چونه کتاب داره هیچ مشکل نداره شیخ صدوق قدس الله نفسه چه کار میکنه شیخ محیچ ما نکته اصولا برای تعبد نیست، تصور این اشکال که ما یک تعبدی به نقل اجماع سید داشته باشیم یک تعبدیم به نقل اجماع شید بگیش که تعبد نداریم مطلب در ما واضح اکتیار تعبد نداره جای تعبد نداره و کاملا مطلبی واضح و روشن جای بحث نداره از مورد از از مراد از خبر خود جای تعبدی باشه حالا شیخ گفته از سالما متعبدن به حجر خبر سهی گفته نیستن و از تعبودی رو ما تفسیر کردیم از تعبودی یعنی این که شعاره مقدس یک معیاری رو قرار دازه هر خبری دارای اون معیار باشه حجر, حجر تعبودی مثلا آقایی میفرمون حجر تحبودی به خبر سره هر را به خبری که راویسته به باشه خبر تعبدن. اهل سنت میگن به عدل زابط عدل اجالت و زرد به خاطر آیه ندر مرحومه الله رو میگه عدل امامی فرسون اخباری میگن موجود باشه در کتاب چیه فرسون قومی میگن فرسون مشایخ هر چی رو مشایخ نهر دارم این بشه این حجیه تعبودی خیلی واضحه حجیه تعبودی حجیه تعبودی یعنی یک معیار باشه هر خبری بازد و اون معیار باشه ما رو تحباز کرده که اون حجدی نسو شجعه اگر شیخ سوسی یه اصحاب ما قائل با حجیت هم به و سید محتضا میگه اصحاب ما قائل نیستن به حجیت به من معنی با سید محتضاست باشه که تو زمین جوی تحباز نداریم به کلمات سید منزور شیخ سوسی از سر از که ما نگاه کردیم در کلمات قبل خودمون، که آهای ق یک مورد ما پیدا که آثاری از اوجه تعبیلی توش شده با سیده مورده اوجه به این حساب ما در بودیم و اصولاً این همه روایت تو بحث اوجه خبر نراره کردن هفتات تا هفتا تا هفتا تا, تا از یک کدومش اوجه در مرزن هم اوجه تعبیلی صبر نیستی نفسی. اگر مورد شیخ اینه که ما اجماع دارن بر خبر مورد شیخ اینه و ما حجی تحبودی نداریم در کلمات قدام اصولا ما تا قبل از انلام شبادی و حجی تحبودی نداریم از اون قلاصی محلن تا قبل از قبل هشتوم نداریم از علام بفر چرا؟ داریم مثل صاحب مداره مثل مرخودهای خویی دیگر داریم چرا؟ اما تا قبل از علام ها نداریم اینه رو با تا قبل از علام یه اتا تصریف مثل دارم مثلا محفت دائیشون ایشون در همه اول معتبر اغایتشون خوندن دیگه میگه وقال در دو محب خبری که سلیم و سنده قبول میکن بعد ایشون قبول نمیشه گاهی خبر سلیم و سنده نیست اما قبول داریم گاهی با سلیم و سنده از قبول نمیشه هر از تصریح میکنه به نفی حجیه تعبدی خود مرمومه محقق جاییشون میگه بود از فیلم گفته شده که ایشون افقه خواهشیه مرموم محقق به تاب شخصیت کمی نیست من رو محفظ یعنی شخصیت بالاییست و بالا در پس این بحث با جیه تعبودی اگر مراد شکل که این بحثه که معارض است و شامل میشه و نمیشه میبخشه چیه مطلب پیش شما واضح تحبول داریم جای نیست کلمات شکل هیچ نشن تعبودی نیست ده. ما واقعیت خارجی داریم به راحتی میتونیم مراجعه کنیم به راحتی میبینیم هیچ حجیت تعبودی برای خبر نیست و اصحاب ما تا قبل از علامه قائل ما ندیدیم که یک نفر که قائل باشه به حجیت تعبودی یا مثلا یه محیاب محیاب هر خبری برق ما برق حجیت ما همچین نداریم اگر مراد از حجیت خبر این باشه که حق با سید ممتزاز باشه اگر مراد از حجیت خبر این است که نه خبر به عنوان یک داری با, با مجموعه شواره حجیته لیکن سیر مرتضان بی خبر به علایه حاله حجیت نیست اون حکمی که در زنه خبره مضمون خبر نه خود خبر معنی سیر مرتضان مطلقش اینه اون اصلا خبر رو به هیچ وجه حجیت نبیند با شواهد. برسر به شواره باشه اون حکم انسان بهش مسوح بقید کردی به حکم مسوح پیدا نه به خود خبر نه به عنوانه اگر اختلافی این دو بزرغا در این باشه <تصفيق> که سید مرتضی طباتی گه خبر اصلا حجت مینه و ما وصول به مضمون پیدا میکنیم و شیعه خصوصی میخواد بگه نه خبر ال بین عصب ما حجت است با شواهد نه با تعبد با مضمون شواهد مثلا مسابقه با کتاب با سنت مثلا وجودی در کتب مشهور در اصول معروض وجودی شده بین مشایخ شیعه الباخری مضمون راویش مطعون نباشه راویش مجموعه یه قرائم رو که ما جمع بکنیم خبر با روانده ای لحظی حجت سه دو مدون که نه نظارشون اینجور تصویر بکنیم همین هم از نظارشون پرس کردیم ما تحبات که نمیدیم هف باشه که با سه دو مدونده نیست یا بس این مطلبی رو که مربون سه دو مدونده اصرار داره که اجماع اصحابه که خبر با نیست. این هم درست نیست این درست نیست اگر خود ایشون این مبناه رو داره می بگم نداره خود ایشان مبناه اینه اینه اما اینه که نقل کرده از اصحاب مال اصحاب نیست این که نقل میکنه اصحاب ما خب ما الان نگاه میکنیم شیخ مفید به حور عمل میکنه شیخ سوسی میکنه نگاه. قومی ها میکنن مغمون کلیمی زیاد هم تو نیست هم این مطلب داری فرموده. که ما به خبر عمل نمیتونه برنگرم به مضمون و حک اصلا خبر کلا موجه نیست اگر ما یه خبر قبول میکنی با شواهد اون مضمونش رو قبول میکنه. نه برای ما در اگر مر اختلاف این دو بزرگوار در این است مدناهی سر منزه که همین راست این ما قبول داریم مدناهی سر منزه اینه اما اگر مراد اینه حق در مقام انصافا این که با شیخ توسیست که معظم اصحاب ما غالبو به خبر انسابند معظم اصحاب ما بر شده سر مرزا شده از اهل هایی که و بعدها شده ابن عزیز هم مفاط کلام ابن عزیزی هم همینه ابن عزیزی امام ابن زهره یکی از اولوای محفل متکلمین ما مفسرین ما که عمده اینها بعد از شیخ طوسیه اینا انساباً هم مثل غالبو به خبر هستن راست این مکلف اینا قائل هستن اما دعوای اجماع درست نیست. بگیم تمام شیعه این تودیه نه این مطلب درست نیست. این مطلب ما به بزرگان مراجعه میکنیم. به تعبود نه. مال آقای کویو مردم عادیها فقط تعبود. چیکار میکنیم در مقابل اجماع شیخ و اجماع سیعه؟ توبت حق با مفهوم شیعه در کلام سید مونزا. با اجماع باشد. اما مذهب خودش چرا؟ ادیا از بزرگان ما هم همین مذهب دارد. اینام قبول. اینام ما قبول میکنیم. ادیا از بزرگان ما این رو دارد. اما حق با شیخ سوسی سه اده ما خبر واحدی که مجموع اشراحه تعییدش بکنه با عنوان ضعیل لفظی قبول دارم حق با شیخ یعنی ما این یعنی مسئله هفت هست که مرموه استاد نمشه او روش در خلطه کلام سهل موتزا با شیخ سوسی رو تعبد گرفتن وقتی نسبت تحبود با نبر گرفتن آیه نبرم تحبود گرفتن وقتی نسب اصلا تمام این مقدمات باخته نه تو آیه نبر تعبد هست نه تو تلام سید محسزا تعبد هست نه تو تلام شیخ سوسی تعبد هست مطالب واضح جای ابهام نداره چید که ما چش مهموندیم تعبد بکنیم ما کاملا میتونیم راحتی مبانی شیخ و مبانی سید محسزا رو ببینیم و بفهمیم که خود اونها چه قائل هستند یک البته اصلاح هم کلمات شیخ خالی از اصطراح میزه یعنی چندید مورد داره مثلا خبرات خبر را میکنه مثلا میگه مرسل نفی عمر قبول میکنه ده ها مورد گه قبول میکنه اطلاع شیخ توسی خالی از یک نوع ابحام نیست سه در مورد که من تو ذهن نیم سالان چیزه توی یه من تو نه یک نواق کار میکنه خبر وجد نیست نیست دیگه خودش یک نواق کار میکنه ادعای اجماعیشان درست نیست که ما الان ت مرنوا خودش رو داده به عدی از آنها. به در بغداد بودن چرا این خبر در بغداد وجود داشته اما تمام اصلاح ما اینطور بوده حتی خود بغداد نه اینطور محسن زمان خود سری مات است. اصولیش آن شیطان موبیل اینطور نزدیک شده سری دیگر. پس به نظر ما این اشاره و جواب و این راجه رو که محققان اصلاح داشتن دو کلام این اصل اساسش باطله نشده. چون اصل اساسش به سطح بودی است. اگر سطح یه خود جزه خبر یکی تحبوت به دعوای اجماع شیخ باز جزه خبر یکی تحبوت به دعوای اجماع سید یه برده ما جزه خبر ما بست چی کار بکنیم بینیم تحبوت ها معلوم شد اصولاً اصولا ما در اینجا نداریم هیچ کدومش نیست بایی نورم تحبوت ثابت نیست به اجماع شیخ و اجماع سید موزان تحبوتی یکی خیلی واضح قدر پنجر که تحبوتی بینیم اجماعا کرسنه و موضاقه هم پیدا در هم مثلا اجماع شهر یا نقل کاش از قول امام محصوم باشی اجماع سهر موضا کاشو از قول امام, امام این که باطله بعدش هم اصولا ما نیازی میتونه افراد نداریم چون هم به وزور داریم میبینیم مبایین رو کشتی کنیم اینطور نیست که نفر نفهمیم مثلا آدم های بلاسفر اقنبانده حقیقی نیست کارها واضح روش قومی ها واضحه در روش اخباری ها حاشیه ایده از اخباری های ما به اصطلاح کام نجاشی داریم که به اخباری اخباری در اصطلاح او همه جور رو همه رو نقل میکنه بدون تعبیه تقریر توضیح پالایش همه جور ما همه در اسکرده من اینو نکته رو فراموش نفرمایید ما شراید به مثل حجه خبر واحد در کل اصول مسئله نرسوفیم که هم در کبراش همه ی علمای اسلام اختلاف دارن هم بعد از در سغره هم اختلاف دارن یعنی نمی‌تونیم ما پیدا برو کنیم که مثلا پنج تا خبر باشه که همه علما قبولش کرده باشن خیلی نادر ان که اجماعی و موافره با کتاب و سنت و عادت عادتا این یه خبری, خبری که قبول کرده یکی ای نکرده این از مبانیشون در سغریاتم معجزه است مثلا اگه خویم که ما خبر سعی ما قبول میکنید اگر ایراد باشه و از اون خبر به قول خودشون سریع است گفتن ایراد رو قبول نگیردن بعضی از این نه چون است و ایرادام فاجر رو مقبول یعنی درست همون مدنا خوی گفته دکاک نمی‌گونی آخوی بخون خبر یعنی تساوی دیه اهل کتاب با مسلمان‌ها آخوی ورشی میاره میگه بعضی‌ها هر است لكن چون ایراد ها برو از گفتن نه این گزاوات سریع است و به در پس فخوره. با هم مبناه نید مجردیش این چی یعنی با حفظ مبناه باز خبر که میرسه آقای فرس به با مبناه واقع یعنی آقای که مبناه که اعراض کاسر نید کاسر سه این به قبول نمی کنن. باز میان آقایی بردازشون آقایی آقای میان یا خیلی شاگیر میان نیست، نه واسه اعراض کاسر نید عمل رو و همان معنای خود الهی کوی به این ربایتی که خود الهی عاملنا عمل میکنه نصیب گفت خوش یعنی یک بحث جز خبر یک نکته عجیبی داره یک عالم غریبی داره هم در کوبریاش مثلا کوی اسراء داره که سر و است هست بر خبر سره تعبودن غلا و این تعبد رو شارع امضا خب من عرض کردم این معنا خودش رو مثلا تا زمان علامه اصلا ما مبنای تعبد رو قائل نداریم یا اغلایی باشه اصحاب ما قائل نداریم این چیگه رو اغلایی اصحاب نداریم تصور این مطلب که یک مطلب واضح اغلایی واضح باشه بزرگان اصحاب ما قبول نداشته باشه انه این من بیش از این وارد این بحث نمیشم پس این طرح سوال ایشان اشکال ایشان و بعد های ایشان رو اما نهن ج و حضای ما سفر اون کلام آجار رو میگن بعد برای و درست تقریب بر کلام آزیا بر جواب خوبی بر منارژ جااب خوبی هم همه اطلاف آممردی دیگه تضیه وقت شماست. این هر صفحه ای که ایشون در اینجا مطرح شدن تقریبا کللا بی محثره چون اصل تصورش و تعض اون تبد درست نیست، نه تعبود به آیه نبر درسته نه تعبود به اجماع شیر درسته نه تعبود به اجماع سید مرتضا درسته لذا خواهی نخواهی کنی كل این کلام لا یرجه الا این راجع به اشکال اولی که من مجزم کردم من این که آگه اطلاعی اشکال دوم بر حجز خبر لذیلت تاسه لبوب احسن الله به آیه نبر راست دارید بر البته من الان توضیح اجمالا میگم و در نهایت این باز بازم برهجه تعبدی خبر اصل این اشکال برهجه تعبدی است اینو برهج توضیح میده این اشکال معروف است به اشکال در اخبار معلو در اخبار معلو مثلا چهار نفر پنی نفر پس اون کلینی انا علیه ابن ابراهیم انا عویه انا نوفلی انا سکومی انا سادر علیه سادر پس اینجوری نسته در اخبار مهر واسه دو اشکال شده یه اشکال به لحاظ اول سر به اصطلاح ما که کده یه حدثانی عقیم بنورم یه حدثانی عقیم یه اشکال به لحاظ آخر سنن یعنی این اشکال از دو طرف وارد شده لذا مرحوم استاد هم سعی کردن دو تا جواب مختلف بدن هم یعنی هر دو اشکال رو جلاغانه مفرح کردن و جواب هر کدار مفرح کردن. اشکال به لحاظ به اصطلاح اول سنه ایشکال تقریبی این ما یک موضوع داریم هر حکمیت هر به سه حکم داره موضوع باشه به طور کلی ما اگر موضوعی که ما به اصطلاح در اصول به کار میگذاریم، به اینو اولاما اختلافی تفسیرش حالا مثلا اگر گفت عکس مل ما اصطلاحا عالم رو موضوع میگیم درست کنم دقیقتر اکرام موضوع نه مفاد ماده موضوعه مفاد هیئت حکمه اون چیزی که این موضوع به او تعلق گرفته او اصطلاحا استلاح، متعلقات متعلق میگن میگه. اکثر بله آلمه مثلا مرحوم نائمی معتقلن به اینکه، به اصطلاح موضوع است که به اصطلاح تحت داره طلع مثل اثر اکرام خب بعضی عالم رو موضوع میگن تو تفاصل دیگر ارزش من نمیخوام وارد بحث بشن در اصطلاح اینجا که آی توی به کار بردن مرادتون عالم حالا اینجا مرادش از موضوع عالم خوباً وجوب اکرام گرفته وجوب اکرام برای عالم یه برنامه‌ای دارن آقایان که هر وقت میخواد حکمی باشه اگه بخواد اون حکم به تبیر مردم اصلاف فعلی بشه باید اون موضوع فعلی بشه مثلا اقیم سلافل دلوک شمس موضوع رو دلوک شمس گرفه اقیم سلافل رو وجوب اقام نماز رو حکم گرفه از فرمان استلاحاتشون فرم میکنم. موضوع رو اون گرفه اون میگن اگر دلوک مثلا الان ذلوک شام جواب الان نزدیک ساعت 10ه متونه 2 ساعت مونده تا دو ساعت و نیم تا 220 20 شب گیره مونده تا ذلوک شب الان ما وجوب نماز نداره امر اعیم الصلاه فعلی نشوده وقتی که از اون گفتم به اسو ذلوک شد اون امر اعیم الصلاه فعلی میشه بلی بحث کردیم هم کلمه موضوع دارای معانی متعدده که اینجا یک معناش حرف کردیم هم کلمه به اصطلاح فعلی این سابقا چند بار هستم کلمه اصطلاح فعلی فعلیت و حب چند تا معنا داره من فعلا این محاوال ما آنه اینجا اصطلاح ناینی و مرموم استاد آل خویی ها بر همین معنای فعلیت رو گرسه در اصطلاح مرموم ناینی فعلیت و حق در است که موضوع فعلی بشه این در این آثاری بار کرده که در واجه معلق آثار برش باز کردن که تو مسئله استحاب تحریحی آثار برش باز حالا من نیم خواب کنم حرفم نه وارد بحثش بشی نه آثارش اون که از الان این قسمت رو بخوام حرف بکنم که اینا یک موضوع میدونن یک حکم میدونن فعلی اصطلاحات استلاحات حالا این مبنا فعلیت و حکم رو تابع فعلیت موضوع میدون اگر موضوع فعلی شد حکم فعلی از طرف دیگه این موضوع این موضوع این به این معنا، به اصطلاح الان من میگم به این معنا، چون در اکرامه عالم دقیقاً موضوع اکرامه نه عالم یه معنا ایست که مثلا عالم موضوع باشه این رو اسطلاحاً گاهی بهش موضوع میگه ترمان گفتیم لیکن مثلا برقام تعبیر تحبیر میکنه ازش به متعلق و متعلق حکم و وجوب میدونه وجوب تعلق پیدا کرده به اکرام پس موضوع اکرام نه در به تفسیریشان در و یا متعلق به تعدیرشون متعلق مخیل عالم متعلق و المتعلق مثلا صدق الاده که خبره یا صدق خبره. مثلا اعمل به خبر الاده یا خبر سبب؟ اعمل به خبر سبب؟ در اینجا خبرات سقه موضوع این محنا یا متعلق المتعلق حکم داریم که روزون عمل باشه. این اینجا این اصطلاح روشن بشه از اون طرف این متعلق المتعلق فردش با متعلق چیه فرد متعلق این که ما این میگیم دو تایی فرد بکنم اینشون اسمشون موضوع بذاشن فردش اینه که متعلق طلب به شعلق میگیره تحت داره طلب و رضا نباید باشه یعنی اکرام نباید باشه چون یه اکرام در خارج بود اصلا تلب بهش تعلق نمیگره به خلاف عالم عالم شد متعلق و فوق داره طلبه این اصلا تلب بهش تعلق نمیگره مثلا اگه گفت اکتمل عالم این معنی چی نیست که تو برای بوجه خرق یک آقای رو عالم بکن، بعد او رو اکرام بکنی معناش ایجاد عالمیه معناش ایجاد اکرامه نه معناش ایجاد عالمه <تصفيق> پس عالم باید مفروغانه ام باشه این دو تا فرقه روشن شد متعلق متعلقه متعلق در متعلق باید نباشه چون اگر باشه که امرشت علاق نمیگیره که در متعلق متعلق باید باشه امر روی تعلق نمیگیره یا به تغییر مرمونداری نیمی کی متعلقون طلاقی متعلق یا موضوع فوق داره طلب خارجش تعریف فوق دائر طلب و تحت دائر طلب اگر گفت اکرم العالم این باز اینجوری باشه یک عالم در خارج حرز بشه نه اینکه شما ایجاد عالم میکنید یک شهریارتی عالم داشت یک شهریارتی عالم نداشت اون شهری که عالم داشت شما عالم دیدید اون از این حکم شما میاد موجوب میاد و دو بایی این اکرام هم نباشه بلداره کسی اکرام عالم ترد بشه یعنی هم که من آلم تحصیل حاصلی که بلکه اشتر دنبایه از تو انبای تحصیل حاصل دقت فرگونه چی ما رو پس بکنم پس بنابراین کاریده این مقدمات روشن بشه موضوع یعنی متعلق متعل موضوع طلب به تعلق نمیگیره موضوع باید سهلی بشه یعنی عالم باید باشه تا اکرام به اکرام بیاد. اگر موضوع فعلی شد اون هوک فعل نه مقدماتی است که در ذهنیت معرب استال بهناائی از دو سال ها نفسود خب تمام میا محل است ویم من حالا باز بحث منابشه اصل اون مطلبش درسته این اون عالب باز محبوب ان باشه. اما اصطلاح موضوع برای اون اصطلاح مثل فعلیت درقول ح حالا همش محل اصطلاحات هست و محل اخلاف سرند میخواب اون بش. اما اصل این مطلب درسته اصل این مطلب توی اکل مال آعاره آلم باید مفروض و وجود باشه اکرام مطلوب و وجوده یکی مفروض و وجوده یکی مطلوب و وجوده اونی که مفروض و وجوده باید اول باشه یعنی آلمی باشه، تو شما رو بکنیم و اکرام که مطلوب و وجوده نباشه و لذا بناشون دیگه اینه چون فعیلیت خوف کنان به تبیرشون به فعیلیت موضوع بزن استلاحشون ایش شده که رتفه یه موضوع مقدم است بر ر یعنی نمیشه شما بخواید اکرام عالم بگی عالمی نباشه نمیشه یا مثلا شما یه من یه آقا احترامش میکنم هی مثلا اکرامش میکنم یا مثلا فرض اکرام به مهمانی من آقا رو چند بار مهمانی این چون میره من به او احترام کنم درس میکنه عالم بشه بعد از احترام من عالم میشی میگه که اکرام بودن اکرام کردم عالم میشه ار ی اکرام واجب اول باید عالم باشه بعد اکرام بیار خودق ر اول باید عالم باشه بعد اکرام بیار اما شما می من اکرام میکنن با اکرام من این عالم میشه این لازم نیسم که اکرام وجوب پیدا نمی کنه دقت میکن همچ اکرام وجوب پیدا میکنه چرا چون پیدا میکنه. چون بالا اول عالم محقق بشه عالم که محقق شد وجوب احکام میاد اما اکرامی که سبب بشه عالم محقق بشه خب دقت بکنید اکرامی که سبب بشه عالم محقق چی یکا واجب نیست دقت میکنه اینا توضیحاته تمام توضیح واضح گفت توضیح الواجبات مشه مشیره اینا امور واجب و لذا تضیعش اینه که همیشه روی موضوع مقدمه بله در عبارات اصول متأخر ما بعضی‌ها تشویق فلسفی کردن به رتبه علت و معلوم میگن ترجمش موضوع بر حکم مثل سر علت بر معلوم تردد علت بر معلل بعضیان تعبیرش کردن به تردد موضوع بر عرض جوهر بر عرض مثلا سفیدی بر دیوار میخواد پیدا بشه الان باید دیوار باشه تا بعد سفیدی پیدا بشه حالا بعضا دیگر نه طبیعه از چیزی دو موره اونا فقط در تغییره. حالا بعد اون بحث نمیشیم پس تا اینجا این مطالب روشن بشه خوب دقت بکنید اون مطالب که تا اینجا روشن شد این است که شما اصولاً باید اول موضوع اون محقق بشه تا حکم روش بیاد. و شما الان کلیلی یه علیه ابنه برای خب چونه که داریم که اعمل به خبر سقه یا صدق العادل اعمل به خبر سقه خب الان به قول آقای خویی نمیشه اینجا فی المقام از خبر المهر زلان بل بجدان خبر رو کلی می کلی گفت حدا این خبر بل بجدان بجدان خب کلی خبر اینجا صدق العادل میگیرزش اعمل به خبر سقه به خبر العرد میگیرزش خب علی بن ابراهیم میگه که حدثنی عبی از کجا معلوم که این کلام حدثنی عبی درست در باشه یعنی این از خود این مطلب که علی بن ابراهیم میگه حدثنی عبی این به خبر ارده قول علی بن ابراهیم این از کجا شما از کجا یه علی بن ابراهیم بحدثنی طبش خبر ارده میگه این چون کلینی گفت خب بسیار خوب کلی گفت ما داشتیم در اعمل به خبر الارض این اعمن بخبر الارض حکمه خوب دقت بکنید اعمن حکمی خبر الارض موضوعه اول باید خبر الارض در خارج باشه تا ما عمل بشوکنیم خب خبر کلی در خارج نمی‌شه اول خبر علی ابن در کجا هست بعد از این که به خبر کلینی از باب تعبد اعمال به خبر الادل عمل کردید تا میشه خبر علی ابن ابرالین دکھر کرد! نظره بکن. <تصحیح> یعنی اگر شما با عمل نمی کردید اعمال به خبر الادل شما خبر علی ابن ابرالین خبر علی ابن و بعد از اعمال به خبر الرد رو خبر کلینی شما به خبر کلینی عمل کردی؟ بعد از این که به خبر کلونی عمل کردین خبر علی ابن ایبراهیم به تو شد اگر شما تحبت نداشت باشین به قبول خبر کلونی شما از کجور دارین که این خبر مال علی ابن ایبراهیم بقوله اون آگو که شما نبوغت موسی رو قبوله رو یهودیه میگم به سیده برد نبوغت هسته موسا که قبوله نبوغت هسته رسول الله مثلا محل اشکاله پس من و شما هر دو اون اتفاقی رو عمل بکنی که موسی. خب اینا جواب دادن به این که چی گفت موسی قبوله اصلو چون اون گفت این چون پیغمبر فرستاده پیغمبر نباشه چه دلیلی که پیغمبر موسی ندی بوده اینی که شما این ما با هم قبول داری از کجا با هم دیگه قبول بریم تو که مسیحی یهودی هستی خب قبولی من که مسلمانم قبول ندارم جز موسی پیغمبر نباشه اگر بنا بشه رسول الله پیغمبر نباشه پیغمبر اسلام پیغمبر نباشه من که از موسی نمی‌دونم شاهدی ندارم کیشون پیغمبر باشه من که قبول کردن به عنوان اینکه قبول کردن مثلا رسول الله پیغمبر الهی سون این عنوان قبول کردن قرارداد نووته او متفوقن علی بین من و شماست چون من از راه رسول الله و همون رسول الله وسه که نبوته موسی تموم شد همون رسول الله. همون رسول الله که من که علم من به نبوته موسی همون فرض که مبادله موسی تام شد پسی اینجا میگه استفاقی تویش استفاقیست دقیق بکنی اینجا به شبیه همینه شما الان بگید اعمال به خبر الاند خب اون قائده اعمال بکنی خبر الاند موضوعه موضوع باید محقق بشه بعد از تحقق موضوع حکم برش بار میشه اینو رو خبر کلی درست کلی نگفت با قولی کنی کلی نگفت حدیثن احضی ابن برایی بسیار بود. اعمال به خبر الاند بگو بله علی ابن برا اما این که خبر علی بن ابراهیم دستانی علی این از خبر این از اعمال به خبر ار خبره این میگه به اعمال به خبر ثابت شد خبره با اعمال خبر یعنی اعمال به خبر ار گفت کلی درست گفته کلی کلامش این بود حدثنی علی بن ابراهیم پس این خبر ثابته ما بیگنه عمل میکنیم اگر بیگنه عمل کردیم نتیجه چیه که وقتی علی ابنگو حد دستانی عدیل این خبر مصابقه اشکال اخبار مروازه یعنی در اخبار مروازه اون واسطه اخیر رابطه اخیر اون خبریتش محرد به اون خبر بعدی خبر بودنش محرد به تحبوده و عرض کردیم حکم نمیتونه اثبات موضوع بکنه یعنی حکم شمش این نیست مثلا مثال مساید که من عرض کردم بگم آقا من اکرام بکنم این شخص رو تا آلم بشه این نیست مفاده اکرام مفاده اکرام الالم یک کسی که ارم آلم هست اکرامش بکن اما اکرامی که بعد ایجاد آلم بکنه خب بکنید؟ اکرامی که بعد ایجاد آلم بکنه چون اکرامی باید زیر عمل به خبر الارد نسبت به خبر کلی تعبدید و شامل شاملش میشه به تحبیر ایشون و اما کلام علی ابن الگاهی که میگه حد عبی این در وقتی خبر خواهد بود که اعمل به خبر الارد شامل خبر کلینی بشه یعنی ما با اعمل به خبر الارد اثبات رو خودیم حاضر خبر الارد با حکم اثبات موضوع میکنیم با خود حکم اثبات موضوع میکنیم این اشکال در اخوار معلوسته که نمیشه ما این کار رو بکنیم به خاطر این مشکلی داره این اشکال رو مرحوم استاد قدسال لا نصر دو تا جواب از این اشکال میدن و ما دیگر مثل همون دهست اول اقصداعا اجمالا کلمات ایشان رو میخونیم و تقریبای کلماته ایشون محسنه همین کلماته دیگران شهر هم گفتم بعد از ما هم متعرض میشین که این بحث چی بوده اشکال چی بوده پای این اشکال اصلا وارد و باید چی بوده و محل نظر کسانی که اشکال کرده چیه و اگر اون اشکال درست باشه